در خدمت سرکار خانم حنا ریایی بنیانگذار مدرسه خصوصی دالمارکی ایرانی در شهر کپنهاگ هستیم. خانم ریایی خدمت شما سلام و صبا خیر عرض میکنم منم همچنین آقای شکری و خیلی متشکرم است که به من این فرصت رو دادین که در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. خیلی خوشحالم در دانمارک بالاخره یک مدرسه دانمارکی ایرانی داره تأسیس میشه میخواستم سال کنم که انگیزه شما در مورد تشکیل یک مدرسه خصوصی دانمارکی ایرانی در دانمارک چی هست؟ بله راستش انگیزه من این هستش که بسیار انسانهای خیرخواه در دانمارک پیدا شدن که برای فرهنگ به زبان ایرانی خیلی تلاش کردن و کلاس های مختلف زبان فارسی گذاشتن و علامن جمع کردن انگیزه من همیشه به این صورت بود که چون خودم با این مشکل مواجه بودم که بچه من چون در جامعه دانمار بزرگ شده و گاهی آقاد براش مشکله که از یه مدرسه دیگه از هم کلاسه دیگهش جدا بشه و بیاد توی یه محیط دیگه که زبان فارسی یاد بگیره این یکی از مسائل بود که منو به فکر انداخت که یه مدرسه خصوصی ایجاد کنم چرا نه از زمانی که الان نسل دوم ایرانی داره بیشتر و بیشتر میشه و این مدرسه باید در حد خیلی وسیع باشه یعنی یکی از هدف های دیگه من اینه که بچه ها نه تنها زبان فارسی رو یاد بگیرن به صورت خیلی وسیع بلکه این زبان رو هم به کار ببرن و دقیقا مثل سیستم آموزش که در مدارس دانما که استفاده میشه زبان فارسی هم به همون صورت داستانهاش درست داده بشه و تاریخش درست داده بشه و بچه ها به صورت ویژوال یا تصویری هم با فرهنگ و تاریخ کشورشون آشنا بشن حال این یکی از یا یکی دو تا از انگیزهایی بود که برای من وجود اومد که این مدرسه رو به وجود بیارم و من به خاطر امساله هم مسئله همین درس رو خوندم در دانمارک یعنی اسکول لیا رو خوندم که شنوندگان از این ساعت می که منیش معلم مدرسه است و سنگه کنم که به صورت خیلی پرفیشنل این کار رو انجام بدم و امید دارم که حتمایش تشکیل این مدرسه چه اهداف و ارزش هایی رو می دنبال بخونه تشکیل این مدرسه چون در دانمارک است و به هر حال باید با احترام گذاشتن به قوانین دانمارک انجام بشه مقدار زیادیش دنبال دنباله و بر اساس قوانین دانمارک است مثلا اینکه دموکراتی باید باشه باید حیات مدیره داشته باشه باید زبان دانمارکی در در بین درس‌ها باشه و به این صورت هم هست اگر اجازه بدین من یه توضیح کتایی بگم که از ساختار مدرسه شروع کنم به چگونگیش برسم و ارزشش. این مدرسه از کلاس آمادگی داره که بهش میگن نولد کلاسه تا کلاس شیشون و هفتم داره و درس های که obligatorisk هستش یعنی مثل دانماکی، ریاضی موزیک طبیعی و و ویژوال آرت که بهش میگن هنر درش هست. ما تا ما درسی رو به نام دینی توی این مدرسه نخواهیم داشت. ما تاریخ دینی خواهیم داشت. به خاطر حساسیت‌های وسیعی که وجود داره به این مساله. و سه تا مدول فارسی خواهیم داشت که مدول اول برای شاگردان و دانش آموزانی هستش که اصلا فارسی بلد نیستن مدول دوم برای کسانی هستش که فارسی کمی بلدن چه خوندن چه نوشتن و, و مدول آخر یا سوم هم برای کسانی هستن که بیشتر بلدن و میتونن کتاب بخونن ولی حال در هر سه مدولش ما فقط الف با درست میدیم یعنی داستان درست میدیم و تاریخ درست میدیم به نسبت شرایط شاگردان کلاس و به نسبت دانایشون نسبت زبان و برنگ فارسی و زبان انگلیسی هم از کلاس اول داریم این خلاصه بود که من این مدرسه هیات مدیری هم داره بله این مدرسه درسته که با فکر من تشکیل شد ولی خوشبختانه از پشتیبانی ایرانیای سرشناس و حتی دانمارکی که با ایرانی ها همکاری جدی و سایمان و فرهنگی دارن هم برخوردار بود. از جمله آقای دکتر و من هستن که معرف حضور همه ایرانی عزیز اینجا هستن. ایشون نویسنده دیکشنری فارسی به دانمارکی و دانمارکی به فارسی هستن آقای کلاوس پیترسن پروفسور کلاوس پیترسن که ایلان شناس هستن در دانشگاه کپنهاگ آقای حسین صفا که فکر می‌کنم خیلی‌ها می‌شناسنشون ایشون از معلمان دلسوز و کسانی هستن که الان و چند سالی که در اینجا به بچه ها فارسی درس میدن ایشون پشتیبانی کامل خودشون رو اعلام کردن خانم غزاله قفوری ایشون هم پشتیبانی خودشون اعلام کردن آقای داوود انساری روانشناس هستند که به عنوان پیداگو یعنی نه به عنوان پیداگو به عنوان اون ساعاتی که خانواده محترم ایرانی خبردن در هر مدرسه باید چند ساعت یک روانشناس باشه برای مسائل احتمالی و بچه که دوچار مشکلات بیشه هستن و ازم بزرگ شما حیعت مدیر شامل خانم شمیاس و من هم میشه شامل آقای حسین تاهرزاد خانم کارولینه و اونی توب تافچن هستند که ایشون هم با من همکاری میکنن و دو معلم دانمارکی دیگه که اینها معلم ورزش هستن یکی برای پسرا و یکی برای دخترا یعنی که شما مطرح کردین یکی برای پسرا یکی برای دخترا کلاس ها مجزا هست یعنی کلاس دخترا جدا کلاس پسرا جدا به هیچ وقت کلاس ها مختلف هست منتها در مدرسه دانمارکی هم برای ادغت یا ورزش دختر و پسر ها بعضی اوقات معلم های جدا میذارن و این اصلا به این معنی نیست که این مدرسه بخواد ایدئولوژی باشه یا بخواد کلاسه مجازا داشته باشه برعکس این مرسه پای ایدئولوژی بنا نمیشه اتفاقا فقط بر این که اونهایی که مثل فارسی تلنه هستند حتی هموطنان افغانی ما که به زبان دری و فارسی صحبت میکنن هم توی مرسه شکل خواهند کنم ولی هیچ زمین این مذهبی مرسه بشترخش نخواهد داشت ولی اجازه میخوام اضافه کنم که اون درس تاریخ عدیان ایران شامل تاریخ عدیان ایران از زرتشت هست یا زراتوشتی مانه ایستا اسلام و بهایی هستند. اینی که به تمام افراد ایرانی با هر عقاید و با هر ایدهی که دارن احترام گشته میشه و برای اینکه هیچ کنه حساسیت هم پیش ما تاریخ این مذاهب رو بررسی میکنیم هل. در رابطه با مکان مدرسه اگر میشه بیشتر توضیح بدید که این مکان تیه شده و چه موقعی اصلا مدرسه دانمارکی ایرانی در کوپناک آغاز به کار خواهد کرد سوالو بسیار به جایی کردین آقا شکری چون مردم خیلی علاقه و در خوشبختانه و پیاماشونو میبینم توی فیسبوک براما مینیز این مدرسه به طور آفیشل یا رسمی از سال 2014 در اواخر ماه آگوست. باز میشه ساختمون این مدرسه همون جور که حیعت مدیره پیشنهاد کردن که البته من فراموش کردم یکی از افراد مهم این حیعت مدیره رو بگم که آقای سام جلایی هستنشون بسیار در, کار، در کارهای حقوقی به ما کمک میکنن همچنین آقای فرهاد نکمر با،, با تفاق خیلی از خانواده ها این جا در کوپنهاک یا اطراف قرار می گیره و در نزدیک یا استشان قطار هستش یا مترو هستش که برای خانواده‌ها رفت و آمد راحت باشه یعنی روزایی که مثلا نمیتونن بچه هاشون رو بیارن یا برشون امکان نداره بچه ها بتونن با وسائل کالکتیوب uh, uh, uh, و فقط این مسئله خیلی مهمیه که خوده وزارت آموزش پرورش دانمارک که باید این رو در واقع اول تایید بکنه به جاش رو هم یک شرطی پرش گذاشته که این مدرسه باید داره حیات باشه داره سالن باشه به خاطر مثلا یا سالن گمناستیک داشته باشه یا اینکه یه جور باشه که بشه بچه ها رو از مدرسه برد و به یه سالن سپورتی رسون که در اونجا بتونن سالیاته ورزش خودشون داشته باشن بر حال این ساختمون باید داره یک شرایطی باشه که سازمانی به نام سنتر فور میلو او پلانت بعد اینو تایید یا گوتن بکنه و, و دوم اینکه دارای مثلا حداقل 8 تا 9 تا لوکال باشه یا اتاق داشته باشه که یکی از اونا برای دفتر هم استفاده بشه و و هفته اونا برای کلاس های بچه ها بعد شرایط دیگه این مرسه باید جای برای کامپیوتر داشته باشه به خاطر که خوب درس میدونید امروز خیلی با کامپیوتر کار میکنند خیلی از بچه ها او بیلین هستند یعنی مشکل بینایی دارن. و اینکه چون این مدرسه یک قسمت بزرگش و کلا علت تشکیلش زبان و فرهنگ فارسی هستش و ایرانی این مدرسه حتی شامل کلاس‌های بالاتر فارسی هم برای افرادی که بزرگسال هستند چون خیلی از مثلا دانمارکیا که با ایرانیا ازدواج کردن یا به صورت دوست به سر دوست هستند زندگی می‌کنن هم علاقمندن که بیان فارسی یاد بگیرن سوم اینکه این مدرسه دونونو موزیک داره یعنی مثل تمام مدارس دانمارکی که موزیک توش تدریس داده میشه درش تدریس داده میشه ما هم موزیک فارسی داریم که با چند نفر صحبت کردیم و میخوایم قرارداد بندیم که بیان به بچه ها آلات موسیقی فارسی رو درس بدن و هم اون موزیک معمولی که در مدرسه دانمارکی درس داده میشه که این فکر کنم که خیلی مذیعت خوبیه چون من میدونم از جمله خودم و خیلی از پدر مادر را علاقه منم بچه هاشون کلاسای موسیقی ایرانی خیلی سپاسگزارم در پایان میخواسم از خودتون برای شنوندگان رادیو البورز بگید در ایران چه کار میکردی؟ چند ساله به دانمارک اومدید در دانمارک چه تحصیلاتی را انجام دادید ب من الان حدود 20ست ساله که دانمارک زندگی میکنم ایران حسابداری می خووندم و اینجا که اومدم خب مثل همه ایرانی ها شروع کردم زبان رو خوندن رو خب بهتر شدن و و یک سال رشته علوم از مژه و بعد azzon, uh, بلوم آزمایشگاه هم خوندم یک سال و بعد از اون به دوره ترجمه رفتم دوره ترجمه زبان دانمارکی و با من مترجم کار کردم حالا توی بیمارستان کمان بعد اولش مقدار دف... دفترچه های ک... کچیک و راه مثلا ایرانی دانمارکی به فارسی ترجمه می برای مردم بعد از اون این مدت آقای فراخ ناصر همکاری داشتم یه مجله ایشون تحسیل کرده بودن به نام هروپارس که به عنوانی فریلانس جورنالیست یا خبرنگار باشون کار میکردم بعد زیر چند در اینجا نبودم و سفر کردم به خارج از بندنات وقتی برگشتم فالک اسکولیه ها رو شروع کردم چون همیشه این رشته خیلی دوست داشتم ایران هم دلیل این که من حسابداری خوندم اینی که متاسفانه از طرف جمهوری اسلامی نگذاشتن که من برم دانشگاه و رشته مورد علاقم که جامشنسی بود بخونم و اینه که حال بعد از برگشتنم از خارج به دانمارک دوباره شروع کردم این رشته که واقعا مورد علاقم بود خوندم و خودم فکر میکنم که یه دنیای دیگه به من داد و خیلی درش موافرم و من یعنی آرزو میکنم که بهترین همون بتونم انجام بدم برای بچه ها الان هم در مدرسه نیاغوم کار میکنم و در حال فعالیت های هستم و جز حیات مدیره دنسی غان از سال 1977 هستم که آقای دکتر برمن فرمان نشستن یا رئیس انجمن هسته خیلی خوشحال شدم خانم ریایی امیدوارم در کارتون موفق باشین به خصوص مدرسه خصوصی دانمارکی ایرانی که برای اولین بار در دانمارک تأسیس میشه موفق باشین در کارتون در خاتمه اگر صحبت خاصی هست در خدمتون هستم راستش بازم هم تشکر میکنم از تمام تمام افرادی که کوچک بزرگ در در این پروژه و به شما رسوندنش به من کمک کردن از جمله خواهر خودم که خیلیشون کمک کردن و همچنین مردم و خانواده ایرانی میخوام که یه شانسی به خودشون بدن و خوشبینانه به این مدرسه نگاه کنن و این مدرسه رو مقایسه نکنن با مدرسه پرایویتی که از بسیارا به دلایل ایدئولوژیک تشکیل شده و ممکنه مقداری هم بدنام باشه که البته بزرشون این مدرسه هرگز اون شکل رو پیدا نخواهد کرد من با اون ام، چی میگن؟ وفاداری که در خودم سراغ دارم و به اون علاقه که به این رشته دارم فکر میکنم که انسان در زندگیش یک کار کوچیکی رو که شروع میکنه به بهترین وجهش شروع کنه و به انجام برسونه و امیدوارم که از همکاری همه شما برخوردار باشم و بازم یه بار دیگه از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید